ناگزیر از تپه به طرف اتاقک سرازیر شد. وقتی رسید بلا تکلیف ماند. جای خالی چولی محسوس بود. گوی آشنای چندین ساله ای را از دست داده بود، تلاش کرد او را نادیده بگیرد. اینطور گمان کند که شبی در پناهگاه شیرپلا یا پلنگ چال تهران با کوه نوردی آشنا شده و فردا صبح دیگر او را ندیده. اما آنجا نه پناهگاه کوه بود و نه چولی کوه نورد. حوادثی که طی چند روز برایش اتفاق افتاده بود فراتر از خیال و تصورش بودند. یکی از آنها همین چولی بود. مثل رازی سر به مهر و معمایی لاینحل مینمود. همان جایی که شب گذشته خوابیده بود، دراز کشید. علت ماندنش در آن اتاق دیدن چولی بود. حال که او را دیده و از دست داده بود، دیگر دلیلی برای ماندن نمیدید. باید فکری می کرد، جایی میرفت. اما به کجا؟ بنفشه دره، آنجا که حتما دو گروه منتظرش بودند یکی مأموران پاسگاه و سرخان و دیگر آنا و سنا یک راه هم بود و آن همین که همه را به حال خود رها کند و از محلک بگیری زد اما این راه را نمیپسندید. در آن صورت درون خود تاپ بر می داشت و می شکست و دیگر قامتش راست نمی شد و نمی توانست در آین روخ خود را ببیند و چشم در چشم خیش بدوزد و شرمگی نشود و فرو نریزد بار این شرم را نمی همیشه به دوش بکشد سنگینی آن کمرش را می شکست مگر اینکه شانه بالا می انداخت و, هزار و یک دلیل برای دور ماندن خود از خطر میتراشید و با آنها دلخوش میکرد بلند شد و به اطراف نگاه کرد. کیسه ی نان را دید به طرف آن رفت کمی نان برداشت. راضی با شئلی از نانت برداشتم از اتاقک بیرون آمد هوا روشنتر شده بود. از شیب تپه بالا رفت. قطره ریز شبنم روی چمن ها نشسته بودند و در پرتوه خورشید، مانند سین ریزی نقره ای می درخشیدند. این بار بیشتاب خود را به یال تپه رساند. دیگر از چولی خبری نبود. باری که راهی که از آن گذشته بود تنها و بیمسافر مانده بود. ایستاد و نگاه کرد. به آبگیرها و تپه ماهورهایی که پوشیده از چمن بودند. قله باز هم نزدیک آمده بود. گویا به طرف او خم شده بود تا بهتر دیده شود. به طرف سفره بزرگ برفی که از قله تا یال تپه دامن گسترده بود پیش رفت. خیلی دور نبود. زود رسید. ابتدا زمین زیر پایش خیس بود و حتی کمی فرو می رفت. اما وقتی پا روی سفره برف گذاشت راحت قدم برداشت. نجوای جوی بارهای باریک را از زیر لایه برف می شنید. آن جوی ها به سمت پایین جاری بودند، جلوتر رد پای موشی را دید کوچک و با فاصله کم و بعد ردپای بزرگتر که به نظرش جای پای روباه بود سپس جای پای بزرگتر بزرگ و کوچک پیش خود فکر کرد پس پیرامونش خبرهایی هست و اون نمی داند. دستهایش را پشت کمر قلاب کرده بود و پیش می رفت. سعی می کرد زیاد به اطراف نگاه نکند انعکاس نور خورشید روی برف چشمهایش را می زد. سرش پایین بود به صدای پایش گوش میداد و آرام آرام میرفت. برف دست سفتر و متراکم بود. گاهی می ساد و سر بلند میکرد و قله را بالای سر خود میدید. نزدیکتر و زیباتر از همیشه. با این حال قصد رفتن به آنجا را نداشت. راه را نمی شناخت. برف تمام نشانه ها را پوشانده بود. میخواست تا آنجا که ممکن است به قله نزدیک شود. مثل همیشه قوه جاذبه مرموز قله او را به سوی خود میکشید بارها اینگونه و ناگهانی تا نزدیکی های قله کوه ها رفته و دست خالی برگشته بود این بار نیز همان کشش مرموز در میان بود حالا یکم دیگه برم, برم برمیگردم میرفت و میرفت من که نمیخوام برم اون بالا فقط میخوام بدونم جلو چطوریه میرفت و میرفت بدون کفش کوله کوه که نمیشه رفت اون بالا کمی جلوتر برمیگردم بر می گردم. میرفت و میرفت تازه هیچ هیچکسم نیست اگه خدایی نکرده اتفاقی برام بیفته همونجا میمونم میرفت و میرفت مگه عقلم کمه که تگ و تنها برم اون بالا تازه راه هم که بلد نیستم امثال هیچ گروهی به قله سعود نکرده اگه رفته بودم معلوم میشد میرفت و میرفت و با دقت به زمین نگاه میکرد سطح برف صاف و سیغلی بود تنها گاهی چین و کوچکی رویان آن دیده می شد که جای پنجه باد بود. گاهی برمیگشت و به پشت سر نگاه میکرد. هر بار چشماندازش تغییر میکرد و این برایش تماشایی بود. از دیدن ی تازه لذت میبرد و بعد به جای پاهایش نگاه میکرد که از زیر پایش شروع میشد و تا انتهای سفره برفی پیش میرفت. خوشحال بود. موقع برگشتن گم نمیششن ولی رفتن، می رفت و میرفت تا به اولین صخره رسید که مثل اقا و عظیم و افثانه ای بر شانه قله نشسته بود و به پایین دست نگاه می کرد. نمی دانست از کدام سویان برود. ماند. با دقت به هر دو مسیر نگاه کرد. یکی از مسیرها برایش آشنا آمد. به نظرش گویا زمانی از آن عبور کرده بود. حتی جای پاهایش را هم می توانست هنوز تشخیص بدهد. خندید و با خود گفت. جای پا بان با سورفت و با دقت نگاه کرد جای پا بود ولی خیلی سطحی و کم عمق. بیشتر به چینهایی میماند که بر اثر بادهای تند روی برف ایجاد میشود اما قدم به قدم این نشانهها بودند و تمام نمیشدند دیگر نمیتوانست باور کند که آنها چینهای بادند بر روی برف جای پا بود کسی پیشتر از این مسیر گذر کرده بود شد و با دقت نگاه کرد کوچک بودند با تعجب گفت بازم پرواز همان جای پایی بود که دیروز پایین تر دیده بود کمر راست گرد و با دقت به اطراف نگریست سخراها ساکت ایستاده بودند گاهی نرمه بادی از میانشان عبور می کرد می خواست برگردد ترس و تردید به سراغش آمده بود پرواز آزارش داده بود هم دیروز و هم امروز اما دوستش داشت گفته بود که میروم پیش گرگ ها از آن پایین به همین جاها اشاره می کرد. حالا فقط جای پایش روی برف دیده می شد. از خودش خبری نبود نه دیروز و نه امروز جای پای او را پی گرفت و پیش رفت شیب ها تند و پیش دار می شدند. باید دست به سنگ و صخره می و خودش را بالا می کشید. باز هم لذت صعود به سراغش آمده بود از بالا رفتن خوشش می آمد دیگر قله را نمیدید میدانست که نزدیکش شده است. یاد حرف چوپان افتاد که گفته بود: جوونیام صبح میرفتم اون بالا نماز میخوندم و بعد از اور برمیگشتم. حالا هم صبح بود. او هم جوان بود و جنون صعود داشت. همینطور مهل دیدن پرواز را، رفته رفته ترس و تردید را از خود دور کرد. تصمیم به رفتن گرفت. از همان راهی که پرواز رفته بود، از روی برف های طلم بار، لبه پرتگاه ها، صدای پرواز را می شنید نه ترس من رفتم تو هم بیا پا تو بذار جای پای من همین کار را هم میکرد و می رفت. گاهی می و نفس تازه می کرد هرچه بالاتر می رفت آسمان کبودتر می شد از آنچه تابه دیده بود کوبش شقیقه ها و تپش قلبش را بیشتر می شنید. اما شوق دیدن پرواز شوق قرار گرفتن روی قله و لذت نماز در آنجا نیرویش را دوچندان می کرد. تا همچنان جای پاها را نشانه راه کند و بالا برود. تونتر می رفت تا زودتر برسد. تونتر می رفت تا موقع برگشتن به تاریکی نخورد. تونتر می رفت تا ظهر آن بالا باشد. تونتر می رفت چون تصمیم به رفتن گرفته بود و دیگر راه برگشت نداشت. قرار نبود نرسیده برگردد. بر این قرار میرفت وقتی به گل رسید افتاد و چشمهایش را بست گوشهایش جز صدای تپش قلب و زربان شقیقهش صدای دیگری نمی‌شنید. شنید از مثل سنگ خشک و سرد شده بودند پلکایش را رو محکم روی هم فشار می‌داد. می‌ترسید چشم باز کند می ترسید ببیند مدتی به همان حال ماند احساس کرد تنها موجود زنده آنجاست اما یک دفعه به یاد پرواز افتاد چشمهایش را باز کرد و نشست جای پاها تا روی قله ادامه داشتند اما آنجا اثری از آنها نبود بلند شد و قدم به قدم و جا به جا نگاه کرد نشانی از جای پای پرواز نبود به یاد چوپان پیر افتاد که گفته بود وسط قله دریاچه است و آبی دارد به زلالی عشق چشم به سمت مرکز قله رفت به نزدیکی دهانه مدور آتش فشان رسید که به صورت دریاچه یخ زده زیر نور خورشید می درخشید توده های برف پراکنده اطراف دریاچه انباشته و به سخراها چسبیده بودند با تنوره میکشید از بالای سرش میگذشت و به سخرههای مشرف بد دریاچه میخورد پایش را روی سطح یخ یخبستهٔ دریاچه گذاشت سفت بود و تکان نمیخورد معلوم بود که چندین ماه است یخها ذب نشدهاند و همانطور ماندهاند و یخ روی یخ آمده است در ساحل دریاچه کمی روی یخها راه رفت خورشید به وسط آسمان رسیده بود و از آن بالا نگاهش را دوخته بود به دریاچهٔ منجمد حد زد که باید ظهر شده باشد یاد نماز افتاد برای وضوع به آب نیاز داشت اما آب در دسترسش نبود با خود گفت جاییم که آب باشه تیمن باطل میشه به سراغ سنگهای ساحل رفت آنها هم یا زیر برف بودند یا یخ زده و چسبیده بودند به زمین و خیال كنده شدن نداشتند به زحمت توانست سنگ تیز و درازی را از پيكرهي نزدیک ترين جدا کند و با آن بیفتد به جان یخ ساحل. لایه های یخ به زحمت سوراخ می شدند. آنقدر ضربه زد که گرمش شد. پس از مدتی آب از زیر یخ بالا خزید. همانجا کفش و جوراب هایش را درآورد و آستین بالا زد و با سرعت وضو گرفت و سنگ و سوراخ روی دریاچه را به حال خود رها کرد. خودش را به جای صافی رساند و سمت قبل ایستاد و قامت بست. با تکه های پراکنده ابر ها را به سرعت جابجا جا کرد. آنها آنقدر پایین آمده بودند که گاهی او را در میان می گرفتند. زانوهایش را روی یخ و سنگ و برف میگذاشت. مهرشت که سنگ کوچکی بود که هنگام کندن یخ از سنگ اصلی جدا کرده بود. سعی میکرد با آرامش بخواند اما اوضاع آرام نبود. پاره های ابر همچنان به سویش حجوم میآوردند و پاهایش از سرما به زمین می چسبید. با این حال روی لحظه های این نماز مکس می کرد میدونست که نماز بی مثالی میخواند هیچ جنبنده و موجود زنده‌ای او را نمی بیند. تنها اوست و آسمان میخواست لذت آن انس و را بچشد آخرین نگاه را هم به دریاچه و توده‌های برف طلمبار شده در حاشیه آن انداخت و از مسیری که آمده بود برگشت وقتی به انتهای قله رسید و به پایین نگاه کرد تیره پشتش لرزید با حیرت به آنچه میدید چشم دوخت یک آن تصور کرد زیر پایش اقیانوس بزرگی گسترده شده که انتهای آن تا عمق افق ادامه دارد تا به حال در زندگیش چنین منظره شگفت و خوفناکی ندیده بود یک سر ابر به پایین قله چسبیده بود و سر دیگرش ناپیدا بود با چینهای ریز و درشت نظیر امواج دریا در مدتی که او بالای قله مشغول تماشای دریاچه و شکستن یخ و خواندن نماز بود پایین قله این همه ابر جمع شده بود جزان آن سطح مواج وسیعی که زیر نور خورشید سفید و یک دست دیده میشد چیز دیگری نمیدید جای درنگ نبود باید هرچه زودتر از راهی که بالا آمده بود پایین میرفت جای پاهایش هنوز بودند برخلاف بالا آمدن پایین رفتن سخت بود ناگهان پایش تا زانو توی برف فرو میرفت و خطر سقوط تهدیدش میکرد جای پاهای پرواز کم رنگ شده بود و به زحمت قابل تشخیص بود اما جای پاهای خودش مشخص بود بیش از هر چیزی نگران زمان بود باید قبل از غروب خودش را به دامنه می رسند لابلای سخرها و انبوه برفها جای مناسبی برای ماندن نبود به همین خاطر تنها به تازه کردن نفس و تمدید قوا اکتفا می کرد و باز سرازیر میشد. آن پایین ابرها تودوار حرکت میکردند و از او میگذشتند. خبری از خورشید روشنای گرم و درخشانان نبود. از درون ابرهای متراکم بیرون آمد و با دیدن اولین تیغه نور خورشید که ابرها را شکافته و بر چمنزار تابیده بود، دلش گرم شد. سخراهای سنگی و سفره‌های برفی را پشت سر گذاشته بود. ابرها به صورت توده های انبوه سفید، تیره و مهگون در حال کوچ بودند. باد آنها را گلهوار حرکت میداد. چمنزار خیز خود را زیر نور خورشید گسترده بود. بالای تپهی رسید که مشرف به اتاقک چولی بود. آن را میان ها و بوته‌های خار شد و گل‌های قرمز گرز مانند آنها می‌دید. از تپه سرازیر شده شد و خودش را به اتاقک رساند. آفتاب بعد از ظهر از چارچوب در به درون تابیده بود. خودش را روی علوفه خشک و زیر آفتاب پهن کرد. از اولاتش مثل سنگ سفت شده بودند و از درد تیر می‌کشیدند. ساعدش را روی چشماش گذاشت تا جلوی تابش آفتاب را به صورتش بگیرد. خودش را رها کرد. اندام خستهش را بر نرمی زمین و گرمای آفتاب سپرد. پشت پلک هایش لکه لکه‌های سرخ نور در هم می‌تنیدند و باز می‌شدند و در آن میان جای پاها روی برفهایی که سرخ بودند دیده می‌شدند. پس از چند بار قلتیدن به چپ و راست، خواب به سراغش آمد. از سنگینی و عمق خواب نگران بود. می دانست که اگر تسلیم شود ساعت خواهد خوابید. بلند شد و نشست و تیره پشتش را به دیوار تکیه داد و پاهایش را دراز کرد. اینطور سبک می خوابید و زود بیدار میشد. شد. چشمایش را بست. همانجا خواب به سراغش آمد. لخوردن سرش را روی گردن احساس میکرد. کرد. مماس با سینهش می و گردنش درد می گرفت. مدتی همینطور طور نشسته خوابید و سپس نانی را که برداشته بود همراه آب خورد و از اتاقک بیرون آمد. میخواست تا سر شب خودش را به بنفشه دره برساند. پس از چند ساعت فرود وقتی درخشش دریاچه را زیر نور خورشید دید خیالش راحت شد. رودخانه با پیچ و تاب زیاد از میان درختان بنفشه دره عبور میکرد و خودش را به دریاچه میرساند. نزدیک شده بود. دیگر عجله نکرد. با خیال راحت سرازیر میشد و به پیچ و تاب راه مالرویی که از آن میگذشت نگاه میکرد. گاهی سر برمیگرداند و به تماشای قله می ایستاد. هرچه دورتر میشد، قله بیشتر قد میکشید و دست نیافتنی به نظر میآمد. گاهی پشت ابرها پنهان میماند. زمانی سرک میکشید و دشت وسیعی را که بر دامنه گسترده بود، تماشا میکرد. نرم نرم پایین میرفت. نمیخواست با گله گوسفندها ها برخورد کند و چوپانی او را ببیند از آن گذشته از سکهای گله می‌ترسید وحشتناک بودند برای همین با گوش و چشم مراقب بود که در مسیر گله این قرار نگیرد یا ناگزیر نباشد با سگ‌ها درگیر شود و به چوپانها توضیح بدهد که کی هست و چه کار می‌کند از کجا می‌آید آنقدر آمد تا در غروبگاه خورشید به زمین‌های های بنفشه در رسید برای ورود به ده زود بود باید منتظر شب میشد تا در تاریکی داخل بشوند. روی تخت سنگی که پوشیده از لایه زخیم گل سنگ بود نشست. گافچران ها و چوپانها ها گله های خود را به طرف ده سرا زیر کرده بودند. صدای پارس سگ ها و زنگوله بز ها از اطراف شنیده میشد. شد. مورچه ها با عجله روی چین و چروک گل سنگ ها رفت و آمد می کردند. زنبور ها هم کم کم گل ها را ترک می کردند و همه چیز نشان آمدن شب داشت. باد شمال از پشت میوزید و آرغ او را سرد می‌کرد. عثسش گرفت. بنابرا عادت بعد از عطسه سرش را بالا گرفت و خدا را شکر کرد. در همان حال روی تپه نگاهش به گرگ افتاد که خورشید پشت سرش در حال غروب بود. از دور مثل مجسمه سنگی دیده میشد. دشت زیر پای گرگ بود. میتوانست مانند اقابی بر سر هر ای فرود بیاید. پشتش تیر کشید و سرما زیر پوستش دوید. از جا بلند شد و با عجله راه در را در پیش گرفت اما گرگ همچنان روی دو پا نشسته بود و نگاه می کرد. خستگی سعود به قله از یادش رفت دوید هر چند قدم یک بار سر می چرخند و به گرگ نگاه می کرد. همچنان نشسته بود با خیال راحت می دوید. وقتی گرگ را بالای تپه ندید فهمید که سرازیر شده است تون تر دوید به باخهای سرسبز هاشیهی بنفش در چشم دوخته بود و راه را پشت سر میگذاشت. مدتی بعد نفسش به شمارش افتاد ایستاد و دو دستش را به زانوهایش گرفت و نفس نفس زد به بنفش درر نزدیک شده بود صدای پارس سکها و سر و صدای مرغ و خروزهایش را میشنید، اما به نظرش خیلی دور می آند. امید رسیدن نداشت کمی که نفسش جا افتاد دوباره به راه افتاد نرسیده به ده تپه کوچک و سرسبزی بود که باید آن را دور میزد و به خانه های بنفش در رمی رسید به زحمت خودش را پیش کشید و مدتی بعد به تپه رسید شیب تپه پر از گلهای بنفش و زرد بود که گویا با دست آنها را کاشته بودند در پیچ تپه گرگ را دید. به فاصله کمی از راه روی گلها نشسته بود ایستاد حس ناتوانی و تسلیم به سراغش آمده بود نتوانست قدم از قدم بردارد مثل کسی که تبول و لرز گرفته باشد دندانهایش به هم میخواد پاس خود را روی خاک راه رها کند بنشیند دراز بکشد و به خواب مرگ فرو برود اما همچنان سروایی ایستاده بود نگاهش به کورسوی نور چراغی که از پنجره خانهی به بیرون میتابید افتاد و میش شده بود و گرگ بالای سرش نشسته بود دیگر قدرت مقابله نداشت از نیرو توهی شده بود در آن حال باز نگاهش به قاب چارگوش پنجره چوبی افتاد که نور نجیب و نوازشگرانه یک چراغ لمپا از پشت شیشه های آن بیرون میتابید به نظرش آمد پشت آن پنجره در اتاقی گرم که با قالیهای دستباف مفرش شده بود خانه‌بادی گرد پرتوه چراغ نشستند. زندگی چهره مهربان و دوست داشتنی خود را از پشت آن پنجره خانه روستایی نشان میداد اراده کرد به راهش ادامه بدهد و خودش را به آن نور برساند. اما گرگ راهش را سد کرده بود. در نگاه وحشی و خوفناکش سرما و انجماد مرگ نهفته بود. آهسته برگشت و از سوی دیگر تپه خودش را به حیات مدرسه رساند و داخل ده شد. صدای گفتگوی اهالی را شنید. همینطور صدای گریه بچه هایی که مادرهایشان رفته بودند از چشم آب بیاورند. خیالش تازه داشت راحت میشد که پشت سر صدای پای شنید. برگشت را نگاه کرد. گرگ وارد کوچه شده بود و به طرفش میآد. دوید، هیچکس کس متوجه آنها نبود، هیچکس از وجود گرگ خبر نداشت، حتی سگهای ده هم پی نبالده بودند، به میدان نزدیک شد، چراغهای زنبوری مسجد روشن بودند و نورشان از آن سر میدان تا این سر کشیده شده بود، تلاش کرد خودش را به شبستان برساند، اما صدای نفسهای گرگ را پشت گوشش شنید، چشم شلوغ بود، چند نفر وضو گرفته بودند و با دستهای چکان به طرف مسجد میرفتند، احساس کرد کسی او را از پشت سر گرفت. شانه‌اش سوخت. خواست فریاد بزند اما مثل همیشه صدایش از حنجره بیرون نیامد. تنها در سرش پیچید و خودش شنید. حالت تهوع به او دست داد. میخواست همهی درون خود را بالا بیاورد. یک لحظه نگاهش به در نیمه باز اتاق عزیز افتاد. خودش را به زحمت به آنجا رساند و توی آن انداخت و در را از پشت بست و قفل کرد. صدای کشیده شدن پنجه‌های تیز گرد به در شنیده می‌شد. خورناسه میکشید و تلاش می کرد بیاید تو او پاهایش را ستونه در کرده بود و کمرش را چسبانده بود به آن و نمی بزاشت. در همان حال صدای ازان اسرافیل برخاست و صدای خورناسه و خراش پنجه گرگ خاموش شد و فشاری بر در وارد نشد چندی بعد صدای پارس سک ها شدت گرفت و چند نفر از اهالی بلفش در فریاد زدند آهای آهای گرگ گرگ اومده اتاق عزیز پس از ماجرای سلطان و دختر قوتاز تبدیل به انبار علوفه سرخان شده بود برای گاوها و گوساله از آنجا علف می بردند. جای آرامی بود بوی یونجه و شبدر خشک در فضای آن پیچیده بود وقتی چشمهایش به تاریکی اتاق عادت کرد پشته‌های برهم انباشته علوفه ها را دید که از بهار سال گذشته درو کرده و نگه داشته بودند صدای گفتگو و صدای شُرشوره چشمه از پنجره بدون چارچوبی که به صورت روزنه نزدیک سقف بود شنیده میشد. اهالی پس از نماز زود پراکنده شدند. یک نفر از پشت چفته در اتاق عزیز را انداخت. او دیگر نمی توانست بیرون برود. با خاموش شدن چراغ شبستان انباری در تاریکی فرو رفت. شانهش کم کم بیشتر میشد. محل درد را لمس کرد. کف دستش خیس شد. در تاریکی نتوانست رنگ آن را تشخیص بدهد اما فهمید که خون است و از جای دندان گرگ بیرون آمده. نشست و به بافه های علف تکه داد و دستش را محکم روی زخم فشرد این بار لای انگشتهایش هم خیز شد. با این حال دستش را بر نداشت و همچنان جای زخم را فشارد. خواب به سراغش آمد، خسته تر از آن بود که درد به بتواند مانع خوابش شود. صبح با صدای فریاد چوپان و ببع گوسفندان از خواب بیدار شد. هنوز به همان سمت خوابیده بود. فهمید که مثل سنگ افتاده و بیدار نشده. خون لای انگشتهایش دلمه بسته بود. جای زخم را لمس کرد، خشک بود. خیالش راحت شد که خون خونریزی نداشته. اما وقتی بلند شد و نشست، جای زخم تیر کشید و درد شروع شد. گویا قلبش درون زخمش میتپید و درد را در رگهایش جاری می کرد. بی حرکت نشست تا درد آرام شود یا با درد خو بگیرد. دلش ضعف رفت. این بار معده دهان باز کرده بود. گرسنگی و تشنگی بعد از بیداری هر دو با هم به سراغش آمده بودند. یادش آمد که باید هنوز تکه ای نان تهجیبش مانده باشد. گشت و پیدایش کرد. خشک شده بود اما در هر حال نان بود و خوردنی. دهانش آب افتاد آنقدر که گوشه لبهایش خیس شد و نزدیک بود بزاغش بریزد. نان خشک را چند بار توی دهانش چرخاند و خیساند و با اشتها همان یک لغمه آرامش کرد سرش را به بافاهای علف تکیه داد و باز هم چشمهایش را بست. باز هم پشت پلکایش گرم شد و خواب به سراغش آمد. به نظرش رسید اتاق روشن شد و کمی بعد کسی صدایش زد. اینجا چرا خوابیدیم؟